یافتن به مجلس دیگر یک رویا نیست اگر تنظیم و تهیه شعارهای انتخاباتی خود را به ما بسپارید شعاربازان با تهیه شعارهایی چون وعده رفع حصر در سال 92 توانست سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را عوض کند به نظر من مشکل نیست را در یک سال آینده بش فراهم کرد هم پس این بار هم با شعارهایی چون از حسر درآوردن محسورین، آزاد کردن زندانیان سیاسی راه یافتن زنان به ورزشگاه دستگیری اسید پاشه کلا فراوی اسفهان کاهش تورم افزایش فرصت های شغلی و کاهش تصدیگری سپاه در کل ارکام کشور توانیم شما را به مجلس برسانیم اگر شعارهای خود را به شعار بازن بسپارید ها جغل. شما اصلا در حدی نبودی که رای دیاری چی شد اومدی مجلس که ها والله این بازان یه کاری کرد من خودم هم نفهمیدم چی شد مردم همینجوری به هم رای دادن خیلی خوبه شوهربازان اصلاً منم برای میاندوره ای بگم داداشم بیاد با شوهربازان کار کنه ما خانوادگی دوست داریم نماینده بشی آه بله بگو بیاد پسرم به بزرگ منم میاد بله با بازان هیچ وقت برای رأی آوردن دیر نیست شعار بازان